بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلات والسلام على رسول الله وعلى على آله آل الله و الله على اعدائهم اعدائ الله الى يوم لقائ الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله بحثنا فيه من الحق باذنك انك تخدي من تشا الى صراط مستقيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا بينهم وبين القر التي باركنا قرآن ظاهره سیرو فیها لیالی و عیاما آمینی من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصت کوتاهی رو در این جمع مستطاب باشم از بزرگوارانی که باعث و بانی این نشست بودن می میکنم چون بزرگواران زحمت کشیدن و متعددن من نام نبرم عبور کنم تشکر میکنم و از شما بزرگواران که در جلسه حضور پیدا کردید علالله الله روهم و عج ولله در روهم و در مناسبات ایام رو، میلاد ماضی امام جواد علیه السلام رو و تولد, تولد آتی آقا امیر المومنین و دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک از نواند. عنوان نشست سلسل حمایش های فقیه کارگزار یا فقیهان کارگزار ظاهرن نشست های متعدد بناس برگزار باشه و البته نخستین همایش همایش حاضره که به نام که از فقهای های بزرگ من در اون بیانیه ای که بعد از رهلتیشون دادم گفتم ایشون امتداد مطبوع و موضون فقه سنتی بود حضرت هایت الله الازما صافی گلپایگانی بود دست سر راه روز پیش که مطرح شد شاید ملاحظه کردید همایش فقیه کارگزار و نام ایشون دیدم بعضی از حضرات محترمی اعتراض داشتن که مثلا حالا وست کارگزار برای اشون شنه، کارگزار نظام هم منظوره کپ حرفی حرفیست نکته ایست دفاع هایی هم پشت قضیه صورت گرفته و حس منطقه بذارید من ضمن احترام به این سخن نمیخوام حاشیه بزنم یعنی رد کنم میدانید که قرآن کریم همه آلمان دین رو کارگزار معرفی میکنی آیه ای که خوندم به برکت روایتی که از آقا امام حس علیه السلام زیل آیه هست میگه آلمان کارگزارانند کارگزار یعنی واسطه دیگه شما لغت هم نگاه کنید میگه واسطه بین خریدار و فروشنده که ارتباط لازم رو برقرار میکنه خودش مستقیما خریدار نیست خودش مستقیما فروشنده نیست ولی رابطه بین دو نفر هست در دو طرف قرار داد. خب برگردیم به آیه آیه میفرماید و جعلنا بینهم و بین قرلتی بارکنا قرن ظاهره محمد ابن سالح ابتر حمدانی نوشتن ولی فکر میکنم حمدانی باشه از اشتباهی که میکنم. میکنن حمدانی حمزانی یا حمدانی این یک نامه داره خدمت آقای محمد زمان که آقا بعضی ها ما رو ملامت میکنن و اتفاقا تمسکم میکنن به برخی از روایات که مثلا فرمودن علمای ما شرار امتن همچون تربیش امام رد میکنن به شدت میفرماین حالا به تربیر من ترجمه آزاد شما قدر خود رو نمیدونید این آیه مال شماست این آیه میفرماید وجعلنا و جعلنا بین هم یعنی بین مردم و بین قرلتی بارکنا یعنی ما ما اهل بیت ما قبل از ما ما پیامبران این بزرگان قرن ظاهره این قرای ظاهره شما هستید یعنی شما کارگزارید حالا به تعبیر نشست امروز رابطید بین مردم و اهل بیت و ما شما معارف و از ما میگیرید ما اهل بیت پیامبر قران و به مردم میرسانید بعد این میخوان سی روفی لیالیه و ایامن امنی واقعش اینه که اگر ما این نگاه رو به آیه نکنیم چی میخویم آیه رو معنا کنیم؟ حالا یک در به در چرا قوه بیندازیم ببینیم کجا یه قرای مبارکه یه قرای ظاهره بعد بگم برید نمیشه غیر از این معنا هیچی دیگه نمیشه و جعلنا بین یعنی بین مردم و بین القرالتی بارکنا یعنی ما قرن ظاهره اینا میشن کارگزاران البته خب هر کسی با درجات متفاوتی به نظر من آقایون چون میدونم صحبت حدر نمیره شاید ما راجع به منزلت عالم هیچ بیانی گویاتر از این آیه نداریم خب ما زیاد داریم ده ها آیه و روایت من ده ها میگم نباید بگم باید بگم صدها ده ها صدها آیه و روایت اما در رأسش یا یکی از رأسها ها این آیه با کمک این آیه که میگه آلمان کارگزاران واسطند. خب لذا با این نگاه ندیگه شعن عالم رو اون اعتراض من نخواستم رد کنم اون جای خودش نزا به قول معروف غیرواقعیه اما این نکته رو باید در نظر بکنی منتقل بشم در تتمیه وقت به کسی که جلسه به نام اوز حضرت هایتلا صافی میدانی ایشون مختلف داره بنده البته نمیتونم محضر محضر بزرگانی که هستیم که بويشوك خیلی مرتبط بودن ارتباط من صرف تقریبا به حساب میاد یعنی کم ولی مقداری که دیدم یا راجب خودم بوده مثلا خب یک فقیهی است که هم صاحب تقواست علم بصیرت سلیقه حکمت مثلا این جوابی که من به امام جمعه خاش دادم بیکی دو سال پیش بود یه حرفی زده بودیم آقا بعدا هم داده تا حرفی نامت بود زد جوابی که من داده بودم راجع به فاتنیه او خب مصد زده داره سال پیش نیا که چطور شد ایشون گفتو چیزی نبوده حس زهرات تب کردن انسان هاییم که تب میکنن کنم بسم قول اب نهشام شیان یک قسمشون می یک قسمشون سالم میشن خب حضرت گروه اول بود کرد و مفخه. خیلی حرفه من دیدم تازه فردا شیعه کارم میشه که پس یه عمری چرا این حرفار زده که جواب خیلی محترمانهی هم دادم حالا یکمیتون شدم جسارت کردم که شما تراس خودتون رو قبول دارید آیایمان جمعه شما از اخلاق بگو از تاریخ بگو چه ساری داری ورود به یه جایی بکنی که برحال حساسیت ایجاد میکنه خب فردا دانشون شما طلبه شما عالم شما میره تو سعی بخاری میخونه که چه کردن با صدیقی تاره برمی میگه این شیخ ما دروغ گفت خب چی میشه خودت بیچاره میشه خودت آبروت میره ببینید بعد یه شب زنگ زدن آقازاده ایشون گشیدن به خود آقا خیلی قریص خب پیر مرد با سن بالای ست سال یعنی این را حواسش هست که حال از یه ای, ای تشکر کنه این حاکی از انصاف، حاکی از غیرت، حاکی از حواس جمع بودن و ملاحظه جوانه من که این گفتم احتمالا فیلمم شد بعداً منتشر بشه من گفتم که سریغه رو میخوام بگم اگر آقای صافی، یالا الگام هست کنیم حضرت تا طلا صافی به نظر شما اگر اومده بود دنیا هیچ کار نکرده بود یعنی هیچی زندگی کرده بود فقط اون کاری که دست اون سیاه رو ایشون بوسید همی کاری کرده بود رفته بود به نظر شما برای توفیق یک انسان کافی نبود این سلیغه اینها که تو بزنگایی کاری میکنه که منفجر میشه تو دنیای امروز شما اگر بیرون پاتون بذارید میدونید که این حرکات حالا عدله استصحاب عدم ازلی و ندونم شعبه ابن کمونت جواب بدی اینا بحث علمیه یه حرکت عاطفی احساسی زمانی که مثلا پاپ فرانسیس میره تو زندان پاها رو شستشو میده چه کار میکنه یه عالمشی هم این کار میکنه دسته یه سیاپوس رو یه تلوه رو میبوسه به نظر من کافیه خب اینا نکاتیست که در مورد این شخصیت هست و ای کاش اینا تکرار بشه اینا سلیغه ها خدادادم هست کارش هم نمیشه بکنی چون میتونست نابوسه میتونست پیشونشو ببوسه مثلا اصلا هیچ کار نکنه اما من سرش بذاره اما یه رفعه میبینی یه کاری صورت میگره و من به نظرم اینا مزده ببینید این تو این بزنگای یه رفعه یه حرکتی اینطوری این مزد اون قیرته هست اگر بخوام یه مقدار متافیزی حرف بزنیم غیر محسوس این مزد اون حرکت از یه حرکت اونجا میکنه اون قیلت نشون میده بعد تو بزنگا این حرکت به نام ایشون میشه. میشه بگذاریم راجب حالا یه مدال منتقل بشیم با کارگزاری ایشون میدونه یک کتابی رو آقای اکبری شاهرودی، من حتی هنوز از نزدیک ندیدم ولی این چند وقت اسمشون رو شنیدم. آقای محسن اکبری شهرودي ایشون دو جلد کتاب نوشته هنوزم نیومده تو بازار نمیدونم چاپ شده نیومده تو بازار یا با هنوز چاپم نشده آقای رفقا دنبال کنید ایشون دو جلد کتاب داره ارسالم هنوز تو بازار نیست جامع دیانت و سیاست این عنوانشه دو جلده مجموعه های سیاسی مرجع عالیقدر شیعه، ارزه قابل عظما صافی گلپایگانی. جلد اول این کتاب من در اختیارم گذاشتم و دیدم راجب حضور ایشون در خبرگان قانون اساسی. جلد دومش حضور ایشون در شورای نگهبان. ایشون دو نوع حضور داره دیگه. اول از طرف عراق میر مجلس خبرگان قانون اساسی در کنار آیتلا حائری دو نفری رای میارن و مرحله دوم حدود اون 8 سالی است که در شورای نگهبانه خب وقتی که رأی میاره از عراق عملا درگیر میشه حالا قبلش مثلا حتی قبلش هم ظاهرا خودشون یه یک کتابی داره که جالب اونم هنوز چاپ نشده اگر اسمش رو بگم نظام امامت و امت شاید همین باشه عبارت بحث نظام امامت و امت نظام امامت و رهبری شده شاید. و چاپ شده شاید. و ویژگی های حکومت اسلامی درست های محمد اینجوری دیگه بر. بسیار خب من در تغه اطلاعاتم که هنوز چاپ نشده شاید اطلاعات غلط باشه خب ایشون جالبه بدونید در واقع اینا دیگه های کارگزاریش هست منطقه خب حالا کارگزاری آقای صافی این نیست که حالا یه کارمندی بشه یا چی بشه ایشون در واقع بیتونه هفره های تیوری که نظام رو حل کنه هفره های که نظام رو حل کنه میشه یه فقیه کارگزار و ایشون همین کارم میکنه. لذا اون موقع مطرح میشه که علما پیشنویس هایی رو به عنوان پیشنهاد قانون اساسی پیشنهاد بدن یکی از کسانی که وارد صحنه میشه من ملاحظه کردم بیان رو آیت صافی ایشون در یک مقدمه ای طولانی به شدت طولانی 5 تا مطلب بزرگ و سیزده فصل و 191 از قانون اساسی مورد نظرش رو پیشنهاد میده و با اون آمادگی ذهنیه که میاد تو مجلس خبرگان و دائم از اون استفاده میکنه خب نکته‌ای که اینجا هست چندتا تا نکتهشو بگم وقتم داره به شدت با سرعت می‌ذره ایشون اونجا نه خودش وارد میشه. بلکه میگه کسانی که امروز سخن نمیگوند، پیشنهاد نمیدن فردا حق نخواهند داشت از نواقع چیزی بگوید. او یا دیگه یعنی خداش در واقع به فرختگانه به علماس به دانشگاهیانه که شما یا وارد بشید و پیشنهاد بدید حالا که، آماده شده حال همش طولانی ها های طولانی ولی اگر نشدید دیگه فردا اشکال نگیرید یعنی نه تنها خودش ورود میکنه و در واقع وارد پر کردن خفراهای تغوری که نظام میشه بلکه که دعوت میکنه دیگر آنها خب من وقت مفصلی نسبت گذاشتم که دستم خالی نباشه میان محظر شما چند تا نکته داره همش نکته است اما بذاری من برخی جاهاش که انتخاب کردن براتون بگم ایشون در اون به اصطلاح پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی چند تا نکته داره یک تأکید داره رو دموکراسی رهبری شده متعهد و مشروع ببینید حرف مال پارسال سال نیست دا. مال ست دوست و سال پیش نیست مال دموکراسی اسلامی یا دم... مثلا امسال زالک نیست جامعه مدنی اسلامی و امثال این که بعدا آمد به صحنه. این مال تیر پنجاب و هشته تاریخی که شد میزنه تیر ماه و هشت تازه انقلاب شده هنوز خیلی چیزا پخته نیست اینا در نظر بگیرید یعنی فضا رو در نظر بگیرید مثلا 44 سال برگردید عقب بعد اینا رو ببینید یک بزرگی میگه اولا رو دموکراسی دست میذاره به نظر ما حالا بخوام یه زمانی نقد بکنم چون من نمیتونم یک نکته ای رو بگم و اگه نقدی داره اشاره نکنم نه که قابل نقده و بگم اون ما مثلا قوی تر از این باید دموکراسی رو منعقد کرد حالا اون جای خودش بحث خودش اما مطرح میکنه مقابل کسانی که اصلا به دموکراسی اعتقاد ندارن راحت حالا هم ندارن اصلا رأی مردم رو براش مجالی حاضر نیست اما رهبری شده متعهد مشروع توزیع هم میده که این رهبری شده متحد مشروب من میخوام بگم سر از دمکراسی قرب در نیاره و هایی که داره خب این جزه چیزهاییست که ایشون مطرح میکنه در اصل چهل و سه حالا اونو اصلش رو نکرد مزاره تو مقدم است اون دموکراسیش تو مقدم است شماره نداره اما در اصل چهل و سه نهاد به انوان قوه عالی و اصلی مرجعیت و فقاهت رو مصرم میکنه با همین باره قوه عالی و اصلی مرجعیت و فقاهت و خب در حد وسیعی برای فقیه قائل میشه به مش... یعنی اختیارات شاید همین هم از مواردی باشه که جای بحث و گفتگو و چالش داشته باشه ولی ایشون مطرح میکنه و بر همین اساسم فکر کنم آقای رمضان اشاره کردن رأی ریاست جمهوری رو رأی مردم رو مشورتی پیشنهاد میده تو خبرگانم تاکید میکنه و در واقع قائل به توهین نیست قائل به نسبه حالا اون دیگه بماند که بعد با اون بحث دموکراسی چجوری جمع میشه اون حالا حرفایش که یه زمانی هم بخواد نقد بشه مجال نقد هست اما رو این نهاد تاکید زیاد داره یعنی در جای جای بحثاش مرجعیت عالی و اصلی قوه عالی و اصلی مرجعیت در آیا حالا آخطا آخر اون رو روی اعتقاد ماندن یا نماندن اون حالا یه بحث دیگرست من نمیدونم یه فصلی رو از اصل 49 به حقوق ملت اختصاص میده فصل پنجم حقوق ملت جالبه چیزی که مثلا ما بعد از نمیدونم تاریخ این برنامه که رهبری معظم پیشنهاد دادن حل اختلاف قبا ایشون در اصل 127 پیشبینه میکنه منطقه اونجا نمیگه ستا قبه میگه مجلس و رئیس جمهور میگه اگر اینا اختلاف کردن چه نهادی؟ نهاد شورای نگهوان رو مرسن میکنه که شنهای نگهوان با ذکر ادله برسونه به قوه عالی مرجعیت تا قوه عالی مرجعیت تصمیم بگیره حتی اگر لازم شد روی جمهورو ازد کنه دیگه به مزلس هم کشیده نشه چون خود مجلس طرف دعواست دیگه خود قوه عالی مرجعیت ام... چی کنه یعنی کنار بذاره ببینید من از اینها میخوام این رو در بیارم که ایشون ام... مسائلی که نظام بعد از سی سال بعد از چهل سال بعد از 20 سال مواجه میشه ایشون در اون اصول پیشنهادی خودش پیشنهاد میده و من اینا رو مسادی بارز کارگزاری میدونم با این مقدمه که از کنم کارگزاری هر شخصی به حسبه هست نقطه دیگری که من باید ارز بکنم رو خطوط قرمزیست که اشون داره میدونید که الان نگاه میکنم بعض ها چرا ولی خب بعض چهرها نه اشون میدونید نتونست با خیلی از تعرضات به مالکت خصوصی کنار بیاد و هر چه بوی تعرض به مالکیت خصوصی میداد مثل قانون کار مثل بندجین و امثال زالک ایشون از مخالفان بود و آخرم حالا نمیخوام داوری قطعی بکنم شاید به خاطر همین جهات بود که فاصله گرفت و دید که مثلا فاصله داشته باشه بهتره در سر تاثیر این قانون پیشنهادی ایشون اگر مثلا بگید طرف دولت رو میگیره و گسترده میکنه حیطه اختیارات دولت رو یا مردم رو طرف مردم رو میگیره ببینید من از سال چارصد و یک و چارصد صحبت نمی کنم و سال پنجا و هشت و نه رو دارم صحبت میکنم که جریان چپ واقعا جریان تندیه و مسلحت به شدت به کار میره من خودم نویسنده فقه و مصلحتم اما این فقه و مصلحت مصلحت ضرورت خطرناکه نمیشه نادیدش گرفت نادیده بگیرین دیرین یخ یخزدگیه نمیشه بدون مهار ازش استفاده کرد در اون فضا ایشون هر جا بوی تندی بده و تیزی بده وای نیست. مثلا نسبت به عوارض خروز از کشور اشون بشه در مخالفت میکنه میگه یک کسی میخواد بره بیرون ای شخصی میخواد به خارج از کشور شما به چه مجاوزی میخواد میگه آبا این پول بده منطور چون بسیره بینایی داره میگه مگر استرار باشه خب استراره حالا استرار نمیگه انلل مرق رجلن واحدا مقیقا پاداره با تمامه از هم هست و راه هم نداره نه اما میگه مخالف اصل بیست قانون اساسی. به شدت با قدرتی که برخی از نهادها میخوان بگیرن مخالفه ایشون یه جایی مطرح میشه که بعضی اختیارات داده بشه به سپاه پاسداران میگه قانون اساسی معیاره و این خلاف آن اساسیه شما نباید به نهاد هر چند تعریف میکنه میگه ما چاکر هم هستیم قبولا داریم درست داره خدمت میکنه اما به چه مجوزی شما میخواد این اختیارات رو از دولت بگیرید و به یک نهاد بدید در یه جای دی میگه اگر رئیس جمهور دید نمیگذارن از اختیاراتش استفاده کنه باید استفاده بده ولو شخص نهبر نذره باید اون جای برست داره دی. منتظر ببینید خیلی من رخت مطالعه به لبنان یک ناظر میگه من کار به جنبه شرعی رهبری ندارم یعنی برای رهبر دو تا شنگاهایی میشه یک شأن شرعی به من حاکمش میگه خب اون مرجع همون قوه عالی مرجعیت اما نه تو سیستم اداریه چیزی نمیتونه کار کنه باید استفا بده و نباید کنار بیاد قانون اساسی اگر خلاف می‌بینه به چه وجبزی به اصطلاح کوتاه بیاد و به گمان خودش خلاف شر بکنه به پرداخت عوارض میگه میگه دولت فعال مایشاه نمی توان به صرف عدم پرداخت عوارض کسی رو تعقیب کرد برای اشخاص پرونده سازی کرد دیگه یواشواش داره معترض میشه به این فضا چون اینجوریه به فضاهایی که بود و دولت و فعال مایشان میدونه رو اصل عدم ولایت احد, احد خیلی تاکید میکنه باز اینجا جنبه مردم رو میگیره و میگه حکومت حاکمیت باید اختیاراتش محدود باشه خب موارد زیادی است من ظاهرا به حسب قرار نیم ساعت دیگه آقای من وقتم تموم می چون یه جلسم داریم و بعد از اینجا برم اونجا دیگه اسایی میکنم خیلی دوست داشتم فرصت بیشتری رو با شما بودم ولی ظاهرا تغییرر این مقدار بود فقط یه چیز بگم دوستان خب حال ما گفتیم آیت الله العظم و صافی کذا کذا کذا اما همه طلبه این دیگه طلبه هستیم و بعد هم که صدا رو صدها طلبه میشنوند صدها رو استاد خب یه مقدارم ما باید تکان بخوریم اینم توصیه آخر منه ما از بزرگان وقتی میگیم لذت هم میبریم دقیقت هاشون،, هاشون اما سمم مازا بعد و باید آیندگان البته اوزه خیلی تربیت کرد من به شدت برم میاد و نفرت دارم از اینکه تا یه چیز میشه میگن اوزه چیکار کرده 40 سال چیکار کرده 50 سال چیکار کرده یک حجاب معاصرت مشمعهس کننده تو حرفا دیده میشه اگر سالگرد آقای متحریم پیش شد که دیگه شروع میشه یکی بود تمام شد رفت و خدا رحمت کنه ایشون خیلی بزرگ بود بعد نه من از اینا نیستم معتقدم ها هست اما خوب دارن کار میکنن که این ظرفیت ها شناخته نشه کار نرم داره این کار رو انجام میده ما فکر میکنیم فقط این تروری که کف خیامون میشه بده و کار دشمنه خیارتون راحت باشه خیلی بسیطر از این برنامه است ما هم حتی خوبه کمک میکنیم خیلی رسانمون کمک میکنه شخصیت های کمک میکنن رقابت ها کمک میکنه ولی خیلی کارمانده باید در هر زمانی فقیهانی منطقه صافی عصر معاصر به هر ده سال بیست سالی باید وجود داشته باشه بزرگان آمدند و کار خودشون در زمان خودشون کردن بعضا جلوتر از زمان هم بودن به قول آقا مالک و زمان بودن بعضی ها صاحب و مالک و نه زمان اونها رو تسخیر کنه. ما باید کار بشه، باید تلاش بشه. بزرگان خیلی کار کردن ولی خیلی خیلی مانده. ان شاء الله که توفیقشو داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم دوست ها مندی همه جانبهه محمود زطرف الله صافی رزبانان لا حوال اعلی شروع فرمودند به نظرم برد بنچست ترین نکته ای که به بحث ما گره میخوره تلاششان برای پر کردن خلل ها و اون نیازهای تئوریک نظام در فرمانشیشه شام تاریخی در ارائه پیشنهادها و تراحیه که اینجا شاید جا داشته ریشه این لگه ترمان مثلا نگاه تاریخیشان اتصالشان بین نسل گذشته علمای مجاهد و دردقمند پرندیشه با نسل کنونی و ارتباط ها و تحملای تاریخیشان شاید ریشه این صبت تاریخی و تعملات بود از منظر استاد تحکیب فرمودن مسابقی رو که ارائه فرمودن خط قرمز هایشان برجسته است و در واقع اینجا یک ای ترکیبی و تحلیل نیاز به خط قرمز هایشان وجود داره بعضی موارد ممکنه مثلا در مقبوله ولایت محدودیت. محدود انگاری ولایت باشه اماشان به رغم وسط نظری که جنو استاد رمزانی اون رو برجسته کردن جناب استاد علی دوست رو هم اون مسأله برجسته ی توشیح یا تنفیز رو مد کردن نشون میده اون اختیار مشروعیت آفرینی ولی عام هست اما ترکیبی دارن با مقوله سیانت از اون خطوط قرمز این رو چگونه ترکیب کنن اون مقوله مصلحت گرایی و اینکه ضرورت های خطرناک رو چگونه پیگیری کنن یک تلفیقی است یعنی در واقع من از بیان جناب استاد علی دوست استفاده میکنم، اون دغدغه و رسالت پر کردن خلخهای توری که نظام از منظرات الله صافی باید برجسته بشه و این راه ادامه پیدا کنه طیب الله